اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حمیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر حمیم عیم س سین قاف ف ع س ا ف الذين من الله العزيز الحكيم خداوند عزیز و حکیم به تو و پیامبرانی که پیش از تو بودند وحی میکند له ما في السماوات وما في الأرض وهو الع و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و او بلند مرتبه و بزرگ است دک دو س و تو وَالْمَلَائِكَتُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ نزدیک است آسمانها به خاطر نسبتهای ناروای مشرکان از بالا متلاشی شوند و فرشتگان پیوسته تسبیح و حمد پروردگارشان را به جا می آورند و برای کسانی که در زمین هستند استغفار می کنند آگاه باشید خداوند آمرزنده و مهربان است و الّذین من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم الله حفیظ علیهم و أنت علیهم کسانی که غیر خدا را ولی خود انتخاب کردند خداوند حساب همه اعمال آنها را نگه می و تو مأمور نیستی که آنان را مجبور به قبول حق کنی. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِنَيْكَ قُرْآنًا عرَبِيًّا لتنذر أم, القرى لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَإِنْ قُونِهُ قرآنی عربی را بر تو وحی کردیم تا ام القرآن مکه و مردم پیرامون آن را انذار کنی و آنها را از روزی که همه خلایق در آن روز جمع میشوند و شک و تردید در آن نیست بترسانی گروهی در بهشتند و گروهی در آتش سوزان ولو شاء الله لجعلهم امه واحده ولكن ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير و واگر خدا میخواست همه آنها را امت واحدی قرار میداد اما خداوند هر کس را بخواهد در رحمتش وارد می کند و برای ظالمان ولی یاوری نیست. ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولی وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدیر. آيا آنها غیر از خدا را ولی خود برگزیدند در حالی که ولی فقط خداوند است و اوست که مردگان را زنده میکند و اوست که بر هر چیزی تواناست و مختلفتم فیه من شیء فحکمه ال الله ذالکم الله ربی علیه توکلت و الیه انیب در هر چیز اختلاف کنید داوریش با خداست این است خداوند پروردگار من بر او توکل کرده ام و به سوی او باز می کردم فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا و من الانعام ازواجا یذرأکم فیه لیسه که و او آفریننده آسمان ها و زمین است و از جنس شما همسرانی برای شما قرار داد و جفتهایی از چهار پایان آفرید و شما را به این وسیله به وسیله همسران زیاد می کند هیچ چیز همانند او نیست و او شناوا و بیناست له مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کلیدهای آسمان‌ها و زمین از آن اوست روزی را برای هر کس بخواهد گسترش می‌دهد یا محدود میسازد او به همه چیز داناست شرع لكم من الدین ما وصابی نوحا والذی اوحینا ایلیک والذی اوحینا ایلیک وما وصینا به ابراهیم و موسی و ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من يريب آيني را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود و آنچه را بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و موسا و عیسی سفارش کردیم این بود که دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید بر مشتکان گران است آنچه شما آنان را به سویش دعوت می کنید. خداوند هر کس را بخواهد برمی و کسی را که به سوی او باز گردد هدایت میکند و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لفضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ آنان پراکنده نشدند مگر بعد از آن که علم و آگاهی به سراغشان آمد و این تفرقه جویی به خاطر انحراف از حق بود و اگر فرمانی از سوی پروردگارت صادر نشده بود که تا سرآمد معینی زنده و آزاد باشند در میان آنها داوری میشد و کسانی که بعد از آنها وارسان کتاب شدند نسبت به آن در شک و تردیدند شکی همراه با بدبینی فلذالک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع وقل آمنت بما أنزل الله من كتابك وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير پس به همین خاطر تو نیز آنان را به سوی این آیین واحد الهی دعوت کن و آنچنان که معمور شده ای استقامت نما و از هوا و حوث آنان پیروی مکن و بگو به هر کتابی که خدا نازل کرده ایمان آورده و معمورم در میان شما عدالت کنم خداوند پروردگار ما و شماست نتیجه اعمال ما ازان ماست و نتیجه اعمال شما ازان شما خصومت شخصی در میان ما نیست و خداوند ما و شما را در یک جا جمع میکند و بازگشت همه به سوی اوست والذین یحاژنون فی الله من بعد ما استجیب له من بعد مستجیب له حجتهم داخضتون عند ربهم و علیهم غضبون ولهم عذابون شدید کسانی که از روی لجاجت درباره خدا بعد از پذیرفتن او محاجه می کنند دلیلشان نزد پروردگارشان باطل و بیپایه است. و قزاب بران هست و عذابی شدید دارند. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدرك لعل الساعة خداوند کسی است که کتاب را به حق ناظر کرد و میزان را نیز تو چه میدانی شاید. ساعت قیام قیامت نزدیک باشد یستعجل بیا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ کسانی که به قیامت ایمان ندارند در آن شتاب می ولی آنها که ایمان آورده پیوسته از آن حراسانند و میدانند آن حق است آگاه باشید کسانی که در قیامت تردید می در گمراهی عمیقی هستند الله <السلام> لطیف <السلام> به <السلام> یرزق من یشاء القوی العزیز خداوند نسبت به بندگانش لطف دارد هر کس را بخواهد روزی می دهد و او قوی و شکست ناپذیر است من کان یرید حرث الآخرت نزد لهو فی حرثه و من کان یرید حرزت دنیا نؤتهی, نؤتهی منها و ما لهم فی الاخرت من نصیب کسی که زراعت آخرت را بخواهد به کشت او برکت و افزایش می دهیم و بر می افضاییم و کسی که فقط کشت دنیا را به طلبت کمی از آن به او میدهیم. اما در آخرت هیچ بهره ای ندارد ام لهم شركاء شرعو شرعوا لهم من الدين ما لم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لا قضى بينهم وان الظالمين لهم عذاب أليم. آیا معبودانی دارند که به خداوند آینی برای آنها ساختند اگر مهلت معینی برای آنها نبود در میانشان داوری میشد و برای ظالمان عذاب دردناکی است در الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. در آن روز ستمگران را میبینی که از اعمالی که انجام داده اند سخت بیناكند ولی آنها را فرا میگیرد اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادهاند در باغ‌های بهشتند و هر چه بخواهند نزد پروردگارشان برای آنها فراهم است این است فضل بزرگ ذالکالذی یبشیرو اللالو عبادهلذین آمنو وعملو الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن یقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور این همان چیزی است که خداوند بندگانش را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند به آن نوید می‌دهد بگو من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی‌کنم جز دوست داشتن نزدیکانم و هر کس کار نیکی انجام دهد بر نیکیش می می‌افزاید چرا که خداوند آمرزنده و سپاسگزار است ام یقولون افترا علی الله ان يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور آیا میگویند او بر خدا دروغ بسته است در حالی که اگر خدا بخواهد بر قلب تو مهر مینهد و اگر خلاف بگویی قدرت اظهار این آیات را از تو میگیرد و باطل را محو کند و حق را به فرمانش پا می سازد. چرا که او از آنچه درون سینه هاست آگاه است و هو الذی یقبلو التوبه عن عباده و عن السیئات. و عن و ما تفعلون او کسیست که توبه را از بندگانش میپذیرد و بدیها را میبخشد و آنچه را انجام میدهید میداند و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله و لهم و و درخواست کسانی را که ایمان آورده و کارهای نیک انجام دادهاند میپذیرد و از فضل خود بر آنها می افزاید. اما برای کافران عذاب شدیدی است ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير هرگاه خداوند روزی را برای بندگانش وسعت بخشد در زمین تقیان و ستم میکنند از این رو به مقداری که میخواهد و مصلحت می داند نازل می كه که نسبت به بندگانش آگاه و بیناست و هو الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَقُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ او کسیست که باران سودمند را پس از آن که معیوس شدند نازل می کند. بر رحمت خویش را میگستراند و او ولی و ستوده است و من آیاتي خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابه وهو على جمعهم اذا يشاء قدير و از آیات اوست آفرینش آسمان ها و زمین و آنچه چه از جنبندگان در آنها منتشر نموده و او هرگاه بخواهد بر جمع آنها تواناست و ما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم فبما کسبت ایدیکم و عن کثیر هر مصیبتی به شما رسد به خاطر اعمالی است که انجام داده اید و بسیاری را نیز می و میکند وما انت بمعجزین فی الأرض و ما لكم من دون الله من ولی و لا نصير شما هرگز نمیتوانید در زمین از قدرت خداوند فرار کنید حق غیر از خدا هیچ ولی و یاوری برای شما نیست. و من آياته الجوارف البحر كالاعلام از نشانه های او کشتی هایی است که در دریا همچون کوه ها به نظر میرسند. این یا شئی اسکن الريح فیظل الرواکد ظهره این فی ذلك لآیات لكل صبر شكور اگر او اراده کند باد را ساکن می سازد تا آنها بر پشت دریا بی حرکت بمانند در این نشانه است برای هر صبر کننده شکل گذار او یوبقهن بما کسبو و عن کثیر یا اگر بخواهد آنها را به خاطر اعمالی که سرنشینانش مرتکب شده نابود می‌سازند. و در عین حال بسیاری را می‌بخشد. و الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من کسانی که در آیات ما مجادله می بدانند هیچ گریزگاهی ندارند فما أوتیتم من شيء فمتاع الحياة الدنیا وما عند الله خير وأبقا للذین آمنوا وعلى ربهم يتوكلون آنچه به شما عطا شده متاع زودگذر زندگی دنیاست و آنچه نزد خداست برای کسانی که ایمان آورده و بر پروردگارشان توکل می کنند بهتر و پایدارتر است والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا واذا ما غضبو هم یغفرون همان کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می‌ورزند و هنگامی که خشمگین شوند اف میکنند والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بینهم و مما و مما رزقناهم ينفقون و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا میدارند و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست و از آنچه به آنها روزی داده این انفاق می کنند. اذا البغی هم و الذين اذا هم کسانی که هرگاه ستمی به آنها رسد یاری می طلبند و جزاء سیئت سیئت مثلها فمنعف واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمین کیفر بدید مجازاتی است همانند آن و هر کس عفو و اصلاح کند پاداش او با خداست خداوند ظالمان را دوست ندارد ولا مانع انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل بکسی که بعد از مظلوم شدن یاری تلبد ایرادی بر او نیست انما السبيل على الذين يظلمون الناس و يبغون في الارض بغير الحق اولائك لهم عذاب علیم ایراد و مجازات بر کسانی است که به مردم ستم می کنند و در زمین به ناحق ظلم روا میدارند برای آنان عذاب دردناکی است صبر و غفر این ذلك لمن عزم الامور اما کسانی که شکیبایی و احفظ می‌کنند این از کارهای پرارزش است و من یضلل الله فما له من ولی من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون یقولون هل من کسی را که خدا گمراه کند ولی و یابری جز او نخواهد داشت و ظالمان را میبینی هنگامی که عذاب الهی را مشاهده میکنند میگویند آیا راهی به سوی بازگشت وجود دارد؟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 و آنها را میبینی که بر آتش عرضه میشوند در حالی که از شدت مزلت خاشه و زیر چشمی به آن نگاه میکنند و کسانی که ایمان آورده اند میگویند زیانکاران واقعی آنانند که خود و خانواده خیش را روز قیامت از دست داده اند. آگاه باشید که ظالمان آن روز در عذاب دائمند. وما و ما کان لهم من اولیاء ينصرون لهم من دون الله و من يضلل الله فما له من سبیل آنها جز خدا، اولیا و یاورانی ندارند که یاریشان کنند و هر کس را خدا گمراه سازد، هیچ راه نجاتی برای او نیست. استجیبوا لربكم من قبل ان یأتی يوم لا مرد له من الله. ما لکن من ملجعی من اجابت کنید دعوت پروردگار خود را پیش از آن که روزی فرارسد که بازگشتی برای آن در برابر اراده خدا نیست و در آن روز نه پناهگاهی دارید و نه مدافعی فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان مما رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. و اگر روی گردان شوند امگین مباش ما, ما تو را حافظ آنان قرار نداده ایم وظیفه تو تنها ابلاغ رسالت است و هنگامی که ما رحمتی از سوی خود به انسان بچشانیم به آن دل خوش می شود. و اگر بلایی به خاطر اعمالی که انجام داده به انها رسد به کفران می پردازند چرا که انسان بسیار کفران کننده است لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ عِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورِ مالکیت و حاکمیت آسمان ها و زمین از آن خداست هر را بخواهد می آفرند. به هر کس اراده کند دختر می‌بخشد و به هر کس بخواهد پسر او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما این له علیم قدیر یا اگر بخواهد پسر و دختر هر دو را برای آنان جمع می کند و هر کس را بخواهد عقیم میگذارد. گذارد زیرا که او داناب و قادر است و ما کان لبشر این یکلمه الله الا وحيا. إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. و وشايسته هیچ انسانی نیست که خدا با او سخن گوید مگر از راه وحی یا از پشت حجاب یا رسولی میفرستد و به فرمان او آنچه بخواهد را بخواهد کند چرا که او بلند مقام و حکیم است و كذلك اوحینا روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا و اینکل تهدی الى صراط مستقیم همانگونه که بر پیامبران پیشین وحی فرستادیم بر نیز روحی را به فرمان خود وحی کردیم تو پیش از این نمیدانستی کتاب و ایمان چیست و از محتوای قرآن آگاه نبودی ولی ما آن را نوری قرار دادیم که به وسیله آن هر کس از بندگان خیش را بخواهیم هدایت می کنیم و تو مسلما به سوی راه راست هدایت می کنیم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور راه خداوندی که تمامی آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست آگاه باشید که همه کارها تنها به سوی خدا با اصنی